داستان بدن بدون روح زن ای بود که یه پسر داشت اسم پسرش جوانیم بود اون سیزده سالش بود که میخواست را بیفته و بره تا پولدار بشه مادرش بهش گفت کجا می‌خوای بری؟ نمیبینی که هنوز بچه ای؟ وقتی تونستی اون درخت سر به پشت خونه رو با یه لگت بندازی اون وقت برو جانین از اون روز به بعد هر روز صبح تا از خواب پا می می دوید سمت درخت یه لگت به درخت می زد برای درخت سر از جاش تکون نمی خورد پسرک بیچاره دراز به دراز روی زمین می افتاد بعدش هم بلند می شد و لباسای خاکیشو رو می تکند و میرفت پی کارش تا اینکه یکی از روزا با تمام قدرتش کوبید به درخت و اون درخت اونقدر خم شد تا از ریشه در اومد و افتاد روی زمین. جوانین دوید پیش مادرش و بهش گفت من تونستم درخت رو از سر جاش در بیارم. مادرش هم گفت حالا میتونی هر جایی که خواستی بری. جوانین با خوشحالی خداحافظی کرد و راه افتاد. روزها رفت و رفت. تا اینکه رسید به یه شهری پادشاه اون شهر یه اسبی داشت به اسم رندلو پیش که حریف این عصبه نبود هر کس امتحانش میکرد همون اول فکر میکرد که از پسش بر اومده اما بعد همه ی اون سوارکارا رو رو زمین میزد هر کسی برای بار اول نصب و امتحان میکرد فکر میکرد که از پسش بر اومده اما اسب همه یه اونها رو زمین میزد. زد. جوانین تو شهر موند و از نزدیک اسب رو دید. متوجه شد که اسب از سایش میترسه. به خاطر همین برای رام کردن روندلو رفت پیش پادشاه و اعلام آمادگی کرد. رفت تو استبل و اسم اسب رو صدا کرد. نوازشش کرد. بعد تون پرید روی زین اسبو. و اونو رو به خورشید از استب بیرون برد. اینجوری اسبه دیگه سایشو نمیدید. و بعدم نمیترسید. جوانین با زانو بهش ضربه میزد و دهنشو میکشید. با از چهار تا تاخت و بعد از یه رو به ساعت اسب مثل یه بره رام و متین شده بود. اما اجازه نمیداد جز جوانین هیچ کس دیگه ای روش سوار بشه. پادشاه همون روز از جانین خوشش اومد و اونو به خدمت خودش گرفت. اونقدر بهش علاقه پیدا کرده بود که بقیه خدمتکارا بهش حسرودی می و به این فکر افتادند که باید یک کاری بدن دست این پسره و زودتر از دستش خلاص بشن. پادشاه یه دختری داشت که سالها پیش یه جادوگری به اسم بدن بدون روح اونو دزدیده بود. هیچ کس هیچ نشونه ازش نداشت. خدمتکارای حسود رفتن پیش پادشاه و بهش گفتن که این جوانین پیش همه ادعا کرده که میره و دختر شما رو نجات میده. پادشاه سری فرست دنبال جوانین. جوانین حیرون مونده بود و گفت که از چیزی خبر نداره. اما پادشاه که حتی فکر شوخی هم تو این زمینه نمیتونست قبول کنه بهش گفت یا دختر منو آزاد میکنی یا میدم سر از سنت جدا کنن. جوانی بیچاره که دید جای هیچ چکونچونه زدنی نیست به پادشاه گفت شمشیر زنگ زده ای که روی دیوار آویزون کردی رو لطفاً به من بدین. بعد هم اصف رو زین کرد و رفت دنبال دختر پادشاه. همینطور که از تو جنگل می‌گذشت شیری رو دید که بهش علامت میده که بیسته. جوانین یکم ترسیده بود. اما جرأت فرار کردنم نداشت. مجبور شد که به با از اسب پیاده بشه. نزدیک شیر که رسید بهش گفت چی میخوای از من؟ شیر بهش گفت میبینی که ما اینجا چارتاییم. منو یه سگو یه و یه مورچه یه اولاق مردم داریم که باید تقسیمش کنیم تو که شمشیر داری، تقسیمش کن و هر قسمتش رو به یه کدوممون بده. جوانین سر اولاغه رو از سنش جدا کرد و داد به مورچه. بهش گفت، بگیر، این واسه تو مثل یه قاره. توشم تا دلت بخواد غذا پیدا می بعد پاهاشو برید و داد به سگه. بهش گفت، هر چی میتونی گاز بزنی. دل روداشم در آورد رو و داد به اقابه. اینم از غذای تو حتی میتونی ببریش بالای درختی که میشینی مابقیرم داد به شیره که از همه بزرگتر بود بعد سوار شد و راه افتاد همون دست شیره دوباره پسر رو صدا کرد جانین ترسید با خودش فکر کرد ای داد بیداد نکنه خوب تقسیم نکردم اما شیره گفت تو قاضی منصفی بودی خیلی خوب تقسیم کردی به نشونه چی میتونم بهت بدم؟ یکی از ناخوناشو در و داد به جوانی و بهش گفت وقتی ازش استفاده کنی قوی ترین شیر جهان میشی. سگم گفت اینم یکی از سیبیلای من. وقتی اونو زیر دماغت بذاری سریع ترین سگی میشی که تا حالا کسی دیده. اقاب گفت اینم یکی از پرای منه. میتونی بزرگ و قوی ترین اقابی بشی که تو آسمون پرواز میکنه. و در آخر مورچه هم گفت منم یکی از پاهای کچیکم امیدم بهت. وقتی اونو به پاد بندازی به شکل مورچه در درمیایی و اونقدر کوچیک میشی که حتی با زره بینم نمیتونن تو رو ببینن. جوانین همه یه هدیه ها رو گرفت و تشکر کرد و براه افتاد. نمیدونست خاصیت اون هدیه ها چیه؟ فکر میکرد که اون حیوانا جوانین رو دست انداختن اما تا از جوره چشمشون دور شد، ایستاد و همه هدیه‌ها رو امتحان کرد. وقتی که خیالش از این بابت راحت شد، مطمئن شد که کارشون حرف نداره. خوشحال و راضی به راهش ادامه داد. از جنگل رد شد. رسید به دریاچه. روی دریاچه یه قلعه بود. قلعه جادوگر بدن بدون روح. جانی خودش اونجا به شکل اقاب درآورد پرید تا جلوی یکی از های قلعه نشست بعد تبدیل به یه مورچه شد و از دای درز در رفت توی اتاق اتاق بسیار زیبایی بود که دختر جوون خوشبر و رویی که از غذا دختر پادشاه بود اونجا زندونی بود دختر بیچاره خیلی ترسیده بود جوانین در حالی که اون رو به سکوت دعوتش میکرد میگفت نه من آمدن نجاتت بدم. کافیه که از جادوگر بپرسی که چطور میشه اونو از بین ببریم و بکشیمش. وقتی که جادوگر برگشت جوانین دوباره به شکل موچه در اومد. دختر پادشاه با چرب زبونی ازش استقبال کرد و اون جلوی جره پاهاش نشوند و سرشو گذاشت روی زانوهاش شروع کرد به حرف زدن. جادوگر جون میدونم که تو بدن بدون روحی و خلاصه هیچ وقت نمیتونی بمیری اما من همیشه میترسم نکنه کسی بفهمه که روحت کجاست و تو رو بکشه واسه همینه که من خیلی ناراحتم جادوگرم بهش گفت به تو میتونم بگم چون تو اینجا حبسی و نمیتونی به من خیانت کنی برای کشتن من احتیاج به یه شیر خیلی قویه تا شیر سیاهی رو که توی جنگله بکشه. تازه بعد کشتن شیر یه سگ خیلی سریع از شکمش بیرون میاد که واسه رسیدن بهش به سریع ترین سگ دنیا احتیاجه. بعد کشتن سگم یه اقاب سیاهی از شکمش بیرون میاد که نمیدونم چه اقابی جرعت میکنه تا بهش نزدیک بشه و باهاش بجنگه. اما وقتی که اقاب سیاه کشته بشه، باید تخم سیاهی رو که از شکمش درمیاد و روی پیشونی من بشکنن تا اینکه روح من بیرون بیاد و من بمیرم. حالا به نظر تو این کار ساده ایه. این دیگه جایی نگرانی نداره. جانین با گوشای کوچیک مورچهیش داشت همه چیز رو میشنید. با قدمهای کوچیکش از لای درز رفت بیرون. رفت لبه پنجره و دوباره به شکل عقاب در اومد. پرواز کرد به سمت جنگل توی جنگل به شکل شیر درآمد و وسط درختار شروع کرد به گشتن تا اینکه شیر سیاه و پیدا کرد باهاش جنگید و جنگید اما جوانین قوی قویترین شیر جهان بود و تونست شیر سیاه و از پا در بیاره همون لحظه جادوگر تو قلعه احساس کرد که سرش داره گیج میره جوانین شکم شیرو پاره کرد و سگ سیاه تندروی ازش بیرون اومد اما جوانین به سرعت به سریترین سگ جهان تبدیل شد و بهش رسید و انقدر گازش گرفت تا اونم کشته بشه و همون لحظه جادوگر تو قلعه مجبور شد بره تو رخت خواب با پاره کردن شکم سگ سیاه اقاب سیاهی بیرون اومد اما جوانین سری به شکل بزرگترین اقاب جهان در اومد و در حالی که به هم دیگه نک می زدن و پنجون می کشیدن به آسمون پریدن. تا اینکه اون اقابه دیگه پروبال نزد و افتاد روی زمین. و جادوگرم تو قلعه تب شدیدی کرد و داشت زیر پتوش می درزید جوانین به شکل آدم در اومد. شکم و کاره کرد و تخم سیاه و ازش درآورد. پس سریع به قرعه برگشت. اونو داد به دختر پادشاه که خیلی خوشحال شده بود. دختر پادشاه بهش گفت چطوری این کارو رو انجام دادی؟ جوانینم گفت کار مهمی نبود. حالا دیگه نوبت توه. دختر پادشاه رفت تو اتاق جادوگر و بهش گفت حالا چطوره؟ جادوگرم جواب داد بیچاره شدم. فکر کنم یه نفر به هم خیانت کرده. دختر پادشاه گفت برات یه ظرف سوپ آوردم اگه اینو بخوری حتما حالت خوب میشه. جادوگر رو تخت نشست و خم شد تا سوپ و بخوره. ولی دختر بهش گفت سب کن تا توش یه تخم بشکنم. اینطوری پرمایه تر میشه و خوشمزه تر. دختر پادشاه اینو گفت و تخم سیاه و شکوند روی پیشونی جادوگر. جادوگر بدن بدون روح همونجا عمرش به پایان رسید و از بین رفت. جانین دختره را با خوشحالی پیش پادشاه برد. همه شاد شده بودند. و بعد از این قضیه پادشاه فورا دخترش رو به عقد جانین درآورد. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 سفر شاهزادهها و شاهان با اسب تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته قصههای دیو و غول و پری رشادت های قهرمان های قصه ها. همه, و همه, و همه. همه و همه و همه در کانال تگرامی هزار افسان داستان های افسانهای صوتی ادساین مهران دوستی